درا که در دل خسته توان در آید باز بیا که در تن مرد روان در آید باز بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست که فتح باب وسالت مگر گشاید باز غمی که چون سفه زنگ ملک دل بگرفت ز خیل شادی روم رخت زدایت باز به پیش آینه دل هران که می به جز خیال جمالت نمی باز بدان مثل که شبا بستنست روز از تو ستاره می شمورم تا که شب چه زاید باز بیا که بلبول مطبوع خاطر حافظ به بوی گلبون وصل تو می سراید با